هزار شرک که دیدم به کام خیشت باز زروی صدق و صفا گشت با دلم دم ساز. روندگان طریقت ره بلاس پرند رفیق اش چه غم دارد از نشیب و فراز غم حبیب نهان بهز گفتگوی رقیب که نیست سینه ی ارباب کین محرم را اگر چه حسن تو از عشق غیر مستقنیست من آن نیم که از این عشق بازیایم باز چه گویمت که ز سوز درون چه میبینم ز عشق پرس حکایت که من نیم غماز چه فتنه بود که مشاته قضا انگیف که کرد نرگس مستش سیف به سرمه نام به دین سفاست که مجلس منوره است به دوست گرد چو شم جفایی رسد بسوز و بساز قرض کرشمه حسن است ورنه حاجت نیست جمال دولت محمود را به ظلف حیات قتل سرایی ناهی سرفی نبرد در آن مقام که حافظ براورد آبا